سرخی دستایی کباب شدمون بشه عهدمون کریم بستم بدری سرخی دستایی کباب شدمون بشه عهدمون تبک کن بدری بشه عهدمون کریم بستم تبک فصلی یه جوره ولی چرخ یخجالار جور با جوره اصله چرخ یخجالار کیمیان البته نبا همه. اونی که سرمایهش داره چه کیمی آیی میخرب از و فالودو و آبزرش و آبالوالو میریزه توش حالا تو شهر نت چرخ کیه حالا اسکناس رو اسکناس نزار کی بزار. تو کیمی و قیفی بیست تومن سوده تو یخی تومن موشمش شیش تومن آبالوالو و آبزرش کم که همه یخچال که داشته باشی غیرتی همی که باشی یخ بلوری میذاری تنگش میریزی تو لیوانم آف زرش. با یخ بلوری و بی یخ بلوری زرشک و آبالبالو همه ای سوده خدا به خود سیگاری هم نباشی سود رو سوده حالا من اینکه که سیگاری هم روزی دو بست سپول دود میکنم میره رو هوا یه طرف یخچالی هم یه طرف هی یخ قالبی چپونم و غل پاتیله هم میزنم که با نره خراب نشه تگری بمونه صفای این فارودو بیشتر از مرستن یه خیاس اگه من صفایش چی کار دارم؟ برادرم صفا دانشوه پول میخواد دانشگاه صفخونه که صفا سرش نمیشه صفا که میگم صفای فارود پاتیری رو میگم وگرنه برادرم صفا رو که میشنسه صفخونه کرایه سر برج ولی بهتر از همه چی میشنسه ولی زمستون ها زمستون اینه بازی برگشته باسه من بعد جبران کنم شده تابستون 3 تا خوردم 4 تا خوردم همش عجیب خوردم ولی مثل الان که زمستونه جبران کردم باقالی و لوبیا و شلغم و سرکه و گلپر و نمک یخچال نمیخورد میفروشم شکر خدا اینو قند جبران 3 تا خوردن و 4 تا خوردن و عجیب خوردن تابستونم میشه ولی پسند ساز خریده یخچال نمیشه آه نگاه پول شب و روز میکنه داداش اینا چجوری پول در میارن که ما نمیتونیم در بیاریم عرص پدریه یا جور بزر جور بزر بقت... باست خوردم دوست داری؟ نا باست نیست گذشته است رسول هستم یک معتاد هیچوقت نمیشه ازشو بور کرد پس هیچوقت نیست که با هم دیگه زیر یه سخف زندگی کنی سخف من آماده است نمیتونم دادشو آنبل کنم بیام کل بهی زمین تو زمینتون باقل الان نمیتونم تهران باسه من گرنی بسفسه مواد همه جا هست وسوسا همه جه هست ولی خاطری شکست تو پرونده فقری آخرم فقط اینجاست من اون پربنده رو باختم چون عملی بودم باختم چون صبحم و بودم شبم و خمار باختم بردی اعتیادو گذاشتی کنار بای گل بحار نمیشه باختم دنیا با آخر نمی رسه. من شعین خوبتتم. محرم روچم ولی این پدری نقد خالی بمونه لاقل تا وقتی که آراز و هنف سر و تو اینجا باختی؟ همین دوباره برده شروع کن. توی و لاقل به کالت خود قبول کنه به گذشته پیروس شد برد من توی؟ وقتی محرمم شدی بردم تو سر سرپان کردی تمیزم کردی کیسه دست گرفتی پاکم کردی بعد تو تنها چیزی که منو سرپان داشت کشاورزی سر اون زمین بود تنید تو اون کلبه بود دنیا یه جوریه که انگار دیگه هیچی سر جای خودش نیست میگو این درخشو کوفه داده درست وسط چلی زمستون منم سر جام نیستم اینجا سر جام نیستم تو نین کل به کنار تو با تو سر جامم خصد نکن آتفه لازمت دارم به زن بیرون از این شهر پرزود هنی فارازم خودشون بزرگه گردم کلفتر از خدا که نیستی هستی میرم کلبه به باشه تو این فصل جده خرابم یادت نره تو باسه بقیه آبچی خانمی باسه من عشق اصلاً چی؟ اینست بیشه هم خوبش نه نه خوبید پس درستان همه شده کیه دردم از یار است و درمان نیز هم دل فدای باید شد و جان نیز هم آج خانم و شاعره تو بخندی یا نخندی من راست میگم خب خاله ما اینجوری در دیگه دختر خونده شد به شرطی میده به داداش ما که داداش بگه من کلاوردارم نه آراز دوستش دارم میخواهش ولی نه به این قیمت ها یه این دوه رو سر بکش بریم یه چرخی توی خیابون بزنیم برکه خوابت برد داداش به خونه زندگیت می رسیدین اصف شبی خون زندگی من توی دیگه یه زرب و جامو جورش کنین ها حتماً باید من بیام آره چی چی اورف منم باید چوری Kõik on tahtu. Kõik on سلام <سؤال> علیکم حسنا بوشه سلام مخلصم Şu projüşün ذهبش خلالا بچه ته راگی اینقدر تمیزش می کنید آره بچه هست اگه تو کم به اون ابو تایی آره می رسی نبا با اون یه چیز دیگه هست نبا اون یه چیز دیگه هست <تصفيق> پیره مردیه عباس اقا این پدر رو به ما برس بزارش که حالا رفتیم چه شب آره الان 12 Das ist. 4 Minuten mal eto. Zaman dedeş. خان داشت از بابای خدابی آمرزمون فقط اینجوری چای درست کردن یاد نگرفتم چیزایی دیگه هم یاد گرفتم. اینکه نه صبح نه شب، نه سلات ظهر، نه خروش نه شغالخون خوون عجره نه به تعطیل. هجرت تحتیله داده چی؟ تحتیل نیست چه دیگه؟ نیست تو هم نیستی کارگره هستم تحتیله دیگه وقتی سابکار بالا سر کارش نباشه یعنی تحتیله منو نمید سالی ماهی یه بار دیر میام من شست دوربین تا دوربین خوابوندم تو این حجره باستشون کردم به این چی میگن؟ گوشی موشی ها واسه همون سالی ماهی یه بار دیر اومدن یه پرتغال جا به جا بشه عمرن بش یه دونه آجاری منور بشه عمرن بشه میدونی چه چه شامسه کنم به این دوبینا و اینکه یه سر دارن هزار سودا ولی سودای اول آخرم تویی دادشی حالت احبالت اینکه شب خوابت میبره یادو دوباره بیخوابی زده به سرت ندونم تو پیس زمین نخوردنت کارت کاسبیت کاسبی کاسبی داداش مرده و کارش هنیف کجاست من اصلا نمیدنستم حنیف نیست هنیف پسرخونده بابامون شد چون بابای خدا بیامرزش به شاگرد اعتماد کرد شاگرده هم این بسات سیگار فروشی فروشیشو زیر پله با آتیش داد بعدم رفت با حسد اقام زد تو سرش اون وقت کی خودشو زد تو آتیش که چهار تا کارتون سیگاری که کل سرمایه زندگیشو بکشه بیرون آمین اسخار صرفات خدابیه مرض بابای حنیف لیلا اینه که بهت میگم شاگرد به درد نمیخوره بساطه نصیحت هم به توجهش چسبیدی به همش ولی گه به لیلا چسبیدیم شما گفتی بحث لیلا بسته شده من نگفتم من نبستم کریم بوستان بست همین شوهر خالمون کریم بوستان اون پسرت یه لاغوای ستار وگر من جلو عاشقی داشتم هم اونم عاشق به کی به لیلا هم که خواهر حنیفه خوهر برادر خوندمه معتمدمه؟ رفیق روزای تنگمه؟ شما راضی باش آقا کردیم موشتان ستارش با من فعلا که خود لیلا گفته نه لیلا که تو رودرباسی خاله علفت الفت کردیم موشتان رو کل خاندان مونده با تو میتونی این رو رودرباسیشو برطرف کنی؟ با نمیتونی؟ نمیتونی 15 ساله دارم به تبل رسفایی من میکنن که چاوش دزده چاوش بعد مرگ باباش؟ سخم شریکه باباشو بالا کشیده. اون که خالامونه میگه بالا کشیدی. از کریموستان اون سطر چه توقعیه؟ اصلا من بد. من خراب، من خولی، من کلاوردار. شما اصلا لیلا خانم بپرس. مگه بعد آتش گرفتن باباش نرف دختر خونه کریموستان شد ها؟ ازش میپرس چند ساله تو درفت خونه کریموستان؟ اصلا بوستان تو خونش چی داشت؟ که 200 میلیون بی که این همه مدت تو امانت کنه پش قباله آبروی من 20 میلیون همین الانش هم 200 میلیونه چه برسه 15 سال پیش یه حجره بوده صدونگ جاره صدونگ مال بابای ما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته منو چهلوم بابا نشستم نشستم بیخ خره من که 200 میلیون پول بابای ما پرشاله بابای شما بوده بی آبرویی پروده شلنق تخته از دیلا بفرس ببار تویی که رفتی دخترشون شدی اصلا زندگی اینا به شمایلش میخواد یه پول گلومبه دیویس میلیونی باشه که مدعی هم تو پرشاله بابای ما بوده اصلا شمایل اینا میخوره یه پول دیویس میلیونی داشته باشن که این همه سال رنگ سیاکرن هم پاچیرم تو صورت من اینا رو برو بپرس میمیتونم بپرسن چرا نمیتونی؟ شما گفتی لیلا بی لیلا جون داشتم غرورتو سر می‌بریدام بچه‌ می‌خواستن یک کلمه بگی شما راست می‌گیید داش من کلاوردار دزد اون وقت لیلا تو سینی بفرمایید خدمت شما ولی آگه این پرسیدن خیلی واجبه بیا بیا ازش بپرس بپرس داشم اونی که شما می‌گید یا خان دادوش خان دادوش چی تو شک نه به قورا نه به عرب خاک آقامون اصلا ببین حرفت کجا به کجا میرسونی مسلمون از عاقبت به خیری کارت رسیده به شهر کردن بخاندرا شد رسید و علاقم به کی؟ به جفتت. نمی‌دانس بهت فدای سرت قربون سرت حرف واز شد حرفت. آقا چاوش مرتزه کارت داره؟ کجا میلی خواهنده داشت من ایف پارچه رو کنده رفته رفته سراغ ستار کار ستار دیگه میرم شهر نشه مگه میدونی کجاست ایس کنی مصافر کشی ستار اگه باشه اگه دیر نرسم خواهی از لیلا بپرسم بچه بابام نیستم اگه بذارم فقط آخ کشیدن از حسرت لیلا به دلت بمانم فقط تو رو روح بابا قسم بی وقت و بی بحانست بشنه رو باشه دادا شنو خوب کی تو رو خبر کرد؟ بابا فهمید؟ نه منشی مصاب فکرش خبرید کرد؟ خب که چی؟ مادا برادرام آزاد کنم ببخشید اه الان چه مشکلی وجود داره؟ از هم شکایتی ندارم ایشون میتونم برم ولی اون یکی نه با معمورم درگیر شده الان که که درگیر نه شد یه حرفی زدن یک کاری کردن یه اتفاق افتاده دیگه میخواید ببریش؟ ببر میخواید اونم با تشخیص مقام قضاییه خانم اون نوچاست و سندش کجا بوده پس حرفو زنده داشت سند می‌خویم باید برید از اربابش چاوش بگیریم ما کارمون خاصن این چیزا نیست باید برید دادس پس کارتون چیه انداختن مردم تو زندان بفرمایید بیرون خانوم براخشی برو دو ماچی چرا قابه هم تورو می‌کنیم چرا قابه دستفای همین فیچین ناراحتی بره اون بری قشقوان بفرمایید بیرون. خودو مارش کنم. مسواش کنه، میرادش چیه سمت توباو بوسانش کنم، میرادش چی؟ میرادش اینه که ما مال باخته این تا قیامت هم به کجا رسید این دعواهاشو 15 سال؟ ولی هنوز پول کریم بوسان زنده نشد. ما پس 15 سال دیگه این دعواهای داره؟ تنی کی کیباب کرد. کدوم ناموسلمونی باب کرد؟ من که مو به مو به تو بسرم چون آبجی می. خودمون ندونستیم؟ اس آبجی کمتر چی از من شنیدی؟ خندت خندمون بوده، اشکت اشکمون عشق بوده. زن دیگه کریم بوسان اشک نداره؟ از کجا رسیدی به مسافرکشه شیفتی با ماشین من؟ زنا بچه‌ی من چند سال یه بار باید برم مسافرت. خود تو که تو این خونه با زندگی کردی، چند سال یه بار ما تو تو حوس کردی. اصلا ول کن. مسافرت و مانتو رو ول کن. مادر ما چیکار کنم با کلیه‌ای نداشته‌ش؟ بچه‌ی من نمی‌خوره، نمی‌پوشه. به خاطر اینکه چاواش پول بابای ما رو کشیده بالا، داداش تو هم نچشه. تنیه ناتنیه کدوم نمو سلمانی باب کرد حرف خودم و خودم برنگرد داداش همی بر منکرش لحنت سلح و صفا و آرامه سلوات سلح آرامه اتفاق نمیفته تا پول بابا برگرده جاوش با پول بابا ما این همه سال کار کرد از سدان هجره باباش رسته به چند تا هجره شیشتان رسته به ساخت موسازی بچه من نخوره بچه اون بخوره صلحی اتفاق نمیفته تا حق به حقدار برسه اولا که اون بچه نداره دوبا من قانون حقت ندونه صداش قانون من اونه قانون که بفتش غریبه است از ما سرد و مدرک و دست خط خواست نداشتیم شما چیم؟ رب چی خانم؟ لله خانم دوان قریبه دست خط میخوایی؟ نداریم بسید میخوایی؟ نداریم کلمه اوستان نداره یعنی داره داغ دلشه از چه سالیگی باباته من نگم کشمشو نمیشنسی؟ به آخشو نمیشنسی؟ یا میشنسی خودت زدی به کوچه هاراز من اله از آراز زدم حرف از نحقی ما زدی من خاضورت که این بستان نحق دروغ میگه؟ مانونفت نحق دروغ میگه؟ من اینه نگفتم نگفتم دروغ میگه سند دایی نخصی زن بزن به دایی توکل ببین میتونه سندی چیزی جور کنه به آراز و چاواش رو نمیزنی بله Bey. Selamünaleyküm. Kim uzunis, ma? Ma, <Sessimus> کسی جز دایی توکل رو باستش گذاشته نه هیچ کس ناز بشه دوابجی خانم بی پدر بی پیر پشت اماده اعلان گذاشه سرداره اجره چی؟ بی پدر بی پیر شنافتی لیلا؟ نه بی پدر بی پیر به ستار بود نه و کریم گوستان بود کریم گوستان باباشه کریم گوستان اسمش طاعت افتن فرش نداره اما آمه اعتبار کریم به نجابت و عقفت کلام میشه و تو داری ریچال بارش میکنی جونش به جون بدری باید نبوده ها کی برده چی خورده هر کی برده هر کی خورده ارزش یه موی گندیده کریم نداره نگاه کن با بابجید نگاه کن مشاله یا دستگل تحبیرت داده بعد الان شد بی پدر بی پی توی این قایلتو سر پیازی تای پیازی میپری و سر میزنی نیش می کنی فش میده تایی توکن اترامت واجبه واجبه جواب نده جواب نمیده جواب ندم که منم نمیشه خود اون پیازم کنون رو که آج با رو و پسراشو خوردم وقت نمکتون میشه کندم آجی راضی تو به کریم موستان بعد بگی حاج اواتجی رازی کریم موستانو داره دستش راه بیافتن بکوبه تا بل روثوی پسرش حاج بادری راضیه پسرش به حتش لیلا بسوزه و تو فکر جنگ و مرافه خودت باشی آبجون گفتم شورای چی آرش کنم من اگه گفتم بله نم. سر همون اون اونمکه که من گفتم چطور این بلده پاین اونمکه کریم موستان واسه وقتی من براتیشم پاین اونمکه حاج بابطه پسرش خواستم من سر چوبش خوند و دوشم چوبش نمیشونم سرم میشونم نمیشونم خونم خونم خونه نداریم ما بدونه جنگ جفتش اه سایتش این تو قلشون به بوچی گفتم سر خونداش، چاوشم، سرم میشکونم چاکره دایی ای. این دوتو با جنابی هم رفیق بودن با هم موسفیق کردن حالا خاص خدا بوده یکیش آروم ساکت زیر خاکه یک شم نفس بریده داره واسه قادش لککک میکنه این وسط هم عاطفه شده بزرگتره همه تو تو بزرگترش عب میبینی؟ ایب آتیش افتاده بینی همونو زن چیه؟ مرد اونی که این آتیش رو خاموش کنه و ساکت کنه آقله رگ گردنی چیه؟ کسی که سول بیاره آشتی بیاره نه این که بزنه، بکوبه، آخری کلام تری صند باشه این صنده همامیتونو خلاص میکنم بابا حرفم صندگیره ای نیست دایی بلی من هست ها حنی فرک میده واسه چاوش چون باباش شدون که حجا زرتون وصیت به نامش نه واسه اینی حنی فرگ میده واسه چاوش چون چاوش مثلا دوبله و سوبله کرده و قاصو میکنه نه به ناموس هم اصلا کمی لیلا باشه نه واسه خاطر اینا نیست واسه خاطر دلمه دویی دلمو چاوشه دلم به عروسه چاوش میشه عروس جمطر نمیتونم بشینم ببینم مردی مثل چاوشو میخوان خراب کنن فارتخ خخخی کنن بنویسن روح باباش تو آتشه به خاطر چاوش بعد جنب سردر حجره اینم به خاطر چهار تا خوجاشو بسوز بفوشش نیست سر احسوب باباشه که گندش بولاس 50 تن اون خور گره قطوره سویه دونه حرف میزنه پشتش میگن نوچاشم آه من نوچاشم اونچه‌ مراممشم اونچه‌ مظلومیاتشم دیگه نوچه‌ جی بشه بگن انگازه بگن که قورگوشو خرسکیا گیره فزت زیاد ای همه چیزی اینجا چارد گون به گوش احد و Kærin märis? Wahl kota agadil? Assalamualaikum. Hvad er det? با توه گفتهی ندارم آقا گفتم گوشم با توه دادگاه تجدید نظر تجدید خانم اونو راحت کرد دادگاه تجدید نظر این مشتو کوبونده پای چشه میگن دستخط رسید مدرک تو چه میگی دستخط رسید مدرک من هر چی شما بگی میگم چرایی چی ازشون نگرفتی آقا جون من و بدرید اینمون رسید بسید نبود قولمون قول بود دست دادنمون سند نبود که به اینجا کشیده خدا بیا چه دست شدار دنیا کتاست اون کجا و به کجا میگم این صورت چی من شد من مدرک نمیخوام دادگاه مدرک میخواد جارشی نوشتم زدم سر در تره بار که چابوش مال مردم خوره ماچشون از سه تا زرد دو تا خورد ها صبح تولای ما اتفاق افتاده افتاده به تو کاری که بیفته داغ دلت گدون داغ خیالوار بودنت خیالوار بودنمیشه سر این ماشینه بوخ داره ن صندلی ها همین نابوق داره ن صندلی نونو دو تا خونواره میده آقا میخام نده لاشاشی نکون بگم که داره برد میزاته برا سعادت باباش ورت چنگش خدا کنه مال حرومو خوش کن پسر جون آراز و شابوش واسه من هنوز یتیمای بدری هست اگه من نبودم اون زنده بود یتیم نباز ازدی شد حالا که اون نیست من یتیم نباز بچه شد آقا جون حق من حق نبت. شب دختره دیگه این چیه پایچه شد میگم نتیجه اعتماد علکی با بزرگش برو پایین نماشی نبخشی گفتم برو پایین نبخشی من سرم پایین نیست نفیش خورا بیشه زنه بچه همونو هم پول به باد قمار ندادم که به بعد دودودام الباتی ندادم که کار کردم جون کردم از بدری نگرفتم نگرفتم تا پولمون پول که رو هم شه بشه یه حاج کمال خودمون خدا بیا مرز بدری رو یه لیوان آب بخواست بخوره نستش بیزمش بسی من چه بردن خوردن بود که پسر علش شد. چی بکنم بچه جون خون میدونی چیه؟ تو دوا میریزه از این مرد بریزه سوختم از اون بریزه سوختم دو سال سوختم به س جون. بشین سر اجاد به سر تو بشین سر اجاد یه لغوه نوم در آرک بازنه بچه هم بخونم پر کنن ظلم و ظالم و به خدا این چیه؟ دیالیزی مامان که جواب نمیدارم باگذار به خدا پول کلیه ای که باید بخریم نجاتش بدیم زنده نگشت من و باگذار بکن به خدا آقا کریم گوستان یونی شموس خاله صابون کسی از خودت شنیده بگی نمیخواد مبارک در عوض باید چند میوارد بدی چند میوارد تنها <تصفح> با تو آره آشفس تن هو می تن هو ملامت زخمی تر شوفتم او شوفتم زخم از برام دیدم از ما کسو